آنا شنبه ده آگست 2013 صبح من به سمت ورزشگاه رانندگی می کردم. بعدش انداختم سمت فروشگاه مچز. تو مسیر برگشت و خودم رو مهمون کردم به یه لباس کوتاه خیلی شیک مارک مکس مارا. <تصفيق> تا اگه یه هم منو با این لباس ببینه می بخشدم. یه صبح عالی دوست داشتنی داشتم. اما وقتی ماشینم رو پارک کردم، استرابی از سمت خونه هیپولا به دلم چنگ انداخت. اونجا پر از عکاس بود و اونم اونجاست. بازم؟ به سختی میتونم باور کنم. ریچل به سرعت از کنار یک عکاس به نظر خشن رد شد. قشنگ شنگ مطمئنم که از خونه اسکاتو بیرون میومد. من تا ناراحت نشدم فقط فقط گیج شدم و وقتی خودم رسوندم بالا و اینو با آرامش خشک و بی احساس به تام گفتم اونم اندازه من گیچ شد. گفت من باش تماس میگرم میفهمم چی تو سرشه بعدی که میتونستم با ملایمت گفتم تو سعی تو کردی فایده نداره من پیشنهاد میکنم که شاید الان وقتش یه مشاوره حقوقی بگیریم ضابط سفارشی یا یه همچی چیزی گفت هرچی از حالا واقعا کاری به ما ند راضیتمون نمیکنه میکنه دیگه زنگ نمیزنه نمیاد نزدیک خونه ما خونه نمی نگران از این موضوع نباش عزیزم من راست و ریستش میکنم راست میگه البته اینجوری اذیت نمیکنه اما برام مهم نیست یه چیزی هست و من نمیتونم بگم نه چی نیست من بارها سعی کردم بگم نگران نیستم سعی کردم بگم که خیالم راحته که همه چیز رو راست و ریس میکنه باهاش صحبت میکنه و بالاخره شهر شر دختر کنده میشه میره فکر میکنم زمانش رسیده که همه چیز توی دستای من باشه حالا من اونو دیدم، بعد زنگ بزنم به افسر پلیس هم خانمه، بازرس گروهبان ریلی، دلسوز به نظر می رسه. من میدونم تام دلش بر ریچل می سوزه، اما فکر می کنم واقعاً الان وقتشه که قضیه این حرومزاده رو یه بار و همیشه حل کنم.